اشتباه اردک روزی بود و روزگاری بود یک اردک جوان بود که در باغی زندگی میکرد در آن باغ ای بود که ماهی بسیار داشت اردک شنیده بود که گوشت ماهی بسیار خوشمزه است اما ماهی ندیده بود اردک یک شب مهتاب به قصد گرفتن ماهی به دریاچه رفت قدری در آب نگاه کرد و در روشنایی محتاب عکس ماه را در آب دید و تصور کرد که ماهی همین است خود را روی عکس ماه انداخت و هرچه در آب جست و جو کرد چیزی به چنگش نیامد بعد که آب از تلاش او موج برداشت و عکس ماه در هم و برهم شد خیال کرد نتوانست ماهی را بگیرد و ماهی فرار کرده است آن شب خسته شد و گفت که گرفتن ماهی خیلی دشوار است شب بعد باز حوست شدیدی برای گوشت ماهی پیدا کرد، باز عکس ماه را دید و اشتباه خود را تکرار کرد و هر چه کوشش کرد چیزی به دست نیاورد. این بود که کم کم ناامید شد و فکر کرد که گرفتن ماهی ممکن نیست، اما خیلی غصه میخورد که چرا نمیتواند ماهی بگیرد؟ روز بعد این معما را با یک مرغابی پیر در میان گذاشت و گفت شنیده بودم که گوشت ماهی خیلی لذیذ است اما تجربه کردم و دیدم ماهی را نمیتوان گرفت مرغابی پیر پرسید چطور نمیشود مگر تو چطور میخواستی بگیری اردک جوان شهر داد که یک چیز روشن در آب دیدم و همین که به قصد گرفتن او به آب پریدم ماهی پریشان شد و فرار کرد و وقتی بیرون آمدم باز دیدم همانجاست و به چنگم نیامد مرغابی خندید و گفت بیچاره این که تو دیدی ماهی نبوده بلکه عکس ماه آسمان بوده که تو به جای ماهی میخواستی بگیری اما حالا مبادا این حرف را به کسی بزنی چرا که به تو میخندند بعد از این هم سعی کن به جای ماهی دنبال گرفتن عکس ماه نروی چون هر کس یک کار تجربه کرده را دوباره تجربه کند پشیمان می شود اردک گفت راست می گویی من اشتباه کردم ولی اردک جوان از بس خجالتی بود از مرغابی پیر نپرسید که ماهی چگونه چیزی است و نمیدانست که پرسیدن و یاد گرفتن هیچ وقت عیب نیست برای همین شبهای بعد هر وقت یک ماهی را هم در آب میدید فکر میکرد لابد این هم عکس ماه آسمان است و با خود میگفت هر کس آزموده را دوباره بیازمایت پشیمان میشود این بود که از گرفتن ماهی ها شد و هیچ وقت به آرزوی خود نرسید این هم قصه اردک کمرو بود که با یک اشتباه معیوس شد و با یک شکست از میدان بیرون رفت و نام اشتباه خود را تجربه گذاشت و همیشه محروم ماند